اور و عمر سعد هر دو فرمانبر کی بودند عبید الله ابن زیاد عبید الله ابن زیاد فرمانبر کی بود فرمانبر یزید بود یزید فرمانبر کی بود شیطان شیطان چه شیطان نفس خودش چه شیطان ابلیس این که دیگه مسلمه برای همه شیطان فرمونده یزیده یزید فرمونده عبیدالله الله ابن زیاده عبید ابن زیاد فرمونده عمر صد و حره اومدن تو کربلا اما یه لحظه هر تکون میخوره چی؟ من باید فرمان کیو ببرم؟ فرمان یزید رو یزید کیه من فرمانشو ببرم؟ هوای نفسم چیه فرمانشو ببرم؟ فرمان خدا و عقلم رو عقلم چی میگه؟ راستی ببینید همین که حالا حضرت میگه اگه دین ندارید آزاده باشید به همین معنام شما دقت کنید اگر بر فرض دینم نباشه آقای این طرف حسینه این طرف یزیده اینا رو من چجوری مقایسه کنم اینکه که جز فساد چیزی نداره اینکه که جز ارزش چیزی دیگه شما در او پیدا نمی کنید من اینو بذارم با تیم بشم لذا یه وقت میگن روز آشورا دیدیم خرمیل عرضه یه حالی پیدا کرده رنگ چهرش عوض شد آدم خیلی شجایی هم هست یکی اومد جلوش چی شده من تو رو توی جنگی لرزان ندیدم ترس برد داشته؟ بله ترس برم داشت از چی؟ ترس از این که عجب بیچاره دارم میشم ای وای با پسر پیغمبر در بیفتم؟ آقا دنیا داره مردشون دنیا رو ببره که مخواد به قیمت قتل پسر پیغمبر تموم بشه گویا یه وقت به بقل گفت که تو تو آب داده ای؟ گفت نه گفت پس من الان میخوام اصمم برم اون بر آب بدم که اون تو لشکر ابن زیاد منده بعدها میگه ای کاش من میدونستم هر داره میره طرف امام حسین منم هم راش میرفتم اونم پشیمان شده بود بعد میگو ای کاش منم یه وقت دیدیم هر رفت گفتیم هر چی شده مثل اینکه که مسترب شده رفت و رفت و رفت یه وقت به عبی عبدالله گفتن آقا یکی داره نزدیک میشه به خیام ما آماده بشیم برای مثلا حمله و دفاع حضرت فرمود نه سب کنید. یه وقت دیدن هر سپرشو به علامت اینکه که جنگ ندارم برگردون شمشیرشم تو غلاف کرد حالا به بعضی نقل ها کپشا رو در آورده به گردن انداخته یا چی حالا اینا دیگه جزئیات شما من خیلی علاما نقل میخواهم ارز کنم رد بشم به امام یکی اومد جلو هرچی میخوایی گفت از قول من به آقا بگید آقا من غلط کردم حالا به تعبیر من توبه کردم تا حالا عبد بودم حالا میخوام آزاد بشم آیا میشه امام حسین منو بپذیره اومدن به امام حسین علیه السلام ارز کردن آقا هرداره بر میگرده اومده حضرت فرمودن این درگه ما درگه نومیدی نیست ما کسی رو نمیرانیم بله میپذیریم خدا آقا اومدن به استقبالش حر از خجالت سرشو پایین انداخته بود یعنی سرفکندم امام علیه السلام فرمود کسی که پیش ما سرفکنده نیست سرتو بالا بگیر اما جوانای عزیز بزرگترا عوض میخوام دو نکتر رو تقاضا میکنم دقت کنید حر آزاد شد چرا؟ یک حریم رو نگه میداشت به چه صورت؟ وقتی در قبل از سرزمین کربلا تو محل اشراف هور به امام حسین رسید اونجا امام حسین با لشکرش اینور هور با لشکریانش اینور موقع اذان ظهر شد امام فرمود از بگید از آن گفتن فرمود ما با سپاه خودمون نماز میخونیم هور تو با افراد خودت نماز بخون هور گفت نه پسر پیغمبر ما میایم پشت سر شما نماز میخونیم اومد پشت سر امام حسین نماز کن حریم رو نگه داشت آقا تون رو با امام قطع نکنید ارتباطتون رو با فاطمه زهرا قطع نکنید دومی وقتی که حرب امام حسین عرض کرد آقا من معمورم شما رو محافظت کنم ببرم پیش ابن زیاد یا با یزید بیعت کنید فرمود سکلت که اون مرک مادرت به ازاد بنشین منو و یزید گفت آقا هر کسی غیر از شما اسم مادر منو برده بود من هم جواب میدادم دادم سکلت که امک اما مادر شما زهراست من احترامش رو نگه میدارم. این عرض ادب به ساحت مقدسه حضرت زهرا و این پشت سر امام بودن و نماز خوندن و وقت کار رو به کجا رسون خدا قسمتون کنه برید تو حرم هور ببینید چه حالی، چه صفایی، چه نورانیت و معنویتی داره چه بهتر از این؟ وقتی از اسب زمین آمد شمشیر به فرقش خورده بود خون از سر میریخت امام حسین علیه السلام آمدند سر او به دامن گرفتن و فرمودند انت حر تا آزادی کما اینکه مادر تو رو آزاد اسم تو گذاشته امام زمانش امام حسین به او بگه تو آزادی آیا از این مقام بالاتر چرا چون از تعلقات خودشو جدا کرد اما هر شهیدی که از اسب زمین می‌افتاد امام حسین رو صدا میزد، زد امام سراسیمه میدوید سرش رو به دامن می گرفت نوازشش می کرد بعد این بدن رو می آوردن تو خیمه دارالحقر که اونجا همه ابدان شهدا رو می گذشتن، اما جان به قرباند یا حسین اون موقعی که اسب به زمین افتاد چه کسی سر حسین رو در دامن گرفت نیزدار با نیزه اون یکی با سنگ اون دیگری با شمشیر صل الله علیک یا مولا